شب هشتم در اول مجلس جناب واعظ بحث را شروع کردند می‌خواهم به عنوان اولین مطلب سؤالی رو از شما آقایون بپرسم همه میدونیم که عقیده اهل سنت این هست که بوینده لا الله و محمد رسول الله مسلمان و مؤمن هست. سوال این هست که با وجود اینکه ما شیعیان قائل به شهادت این هستیم، چرا شما سنیها ما رو کافر، مشرک و رافزی می مگر شما نمی پیامبر فرموده اگر به هر یک از زحابه من اقتدا کنید، هدایت می شوید. آیا علی را جز صحابه نمی دانید یا ادعا می کنید که پیامبر در بیان این حدیث علی را استثناء کرده؟ ما برای طبعیت از اهل بیت دلایل بسیاری داریم. آیا شما برای طبعیت از امه اربعه هیچ دلیلی دارید؟ از ابن عباس منقول است که رسول خدا فرموده یا علی مسل تو و فرزندان تو مسل کشتی نو است. هر کی به آن متمسک شود نجات یابد و هر کی از آن تخلف کند حلاف می شود. مسئله شما مسئله ستارگان است که تا روز قیامت هرگاه ای پنهان شود ستارهای دیگر طولو می کند. همچنین از رسول خدا نقل شده هیچگاه به اطرات من چیزی نیاموزید چون آنها از شما عالم جالب و عجیب این است که ابن هجر مکی متعصد میگوید، افراد عالم و عامل اگر از اهل بیت باشند بر علمایی که از اهل بیت نباشند مقدمند با این حال خودش دیگران را مقدم بر سرور اهل بیت یعنی علی علیه السلام دانسته حال بفرمایید آیا به ما این اجازه داده شده که به صلاح دیده گر به جای قرآن کتاب دیگری را برگزینیم؟ هرگز مخصند به همان دلیل که برای قرآن نمیتوان بدل آورد، برای مفسر قرآن نیز نمیتوان بدل انتخاب کرد. چه معنا دارد که ما جای علی را به ابو بدهیم؟ آیا غیر از این است که هیچ دستوری از جانب خدای بزرگ و رسول گرامی او در زمینه طبعیت از اعمه عربعی شما صادر نشده است؟ آیا کتاب های شما پر از دلایل روایی بر خلافت علی علیه السلام نیست؟ آیا دلیلی هرچند ضعیف از قرآن و یا از روایات رسول خدا برای لزوم طبعیت از ابو حنیفه و آن سه امام دیگرتان دارید؟ خب ایشان در زمان رسول خدا نبودند و پس از حدود سه غرم به دنیا آمدند. به همین خاطر در این زمینه مطلبی صادر نشده. از خود حضرت حالی قضاوت کنید چرا و به چه دلیل ما امامان با عظمت خودمان را کنار بگذاریم و از امامان بینامونشان شما طبیعت کنیم. بر اساس چه ملاک عقلی با وجود این همه مستندات مسلم روایی عقلی پیروی از علی را کنار بگذاریم و پیرو معاویه و ابوهنیفه شویم؟ مگر ملاک شما برای انحصار امامت، در اعمه اربعه تان چیست؟ ملاک ما مانند ملاک شما برای انحصار امامت در دوازده امام است. پس در ابتدا من ملاک های انحصار دی را به دوازده نفر میگویم و سپس منتظر شنیدن دلایل شما خواهم ماند. در صحیح بخاری از سه طریق، در صحیح مسلم از نه طریق، در سنن عبیدا داود از سه طریق در سنن ترمزی از یک طریق و همیدی در جمع بین صحیحین از سه طریق به این مطلب اشاره شده حال استدعا کنم، یک دلیل ولو ضعیف برای انحصار امامان به چهار نفر را اقامه بفرمایید علاوه بر این دلایل روایی هیچ یک از ائمه شما از جهت توان علمی و فقهی در حد و اندازه امامان ما نبودند و حتی بزرگترین آنها شاگرد یکی از امامان ما بوده. شما پیروی از شاگرد غیر را واجب و پیروی از استاد منسوس را حرام می‌دانید. مالکم کیف تحکمون؟ چه کسی گفته که اعمه ما جزو شاگردان امامان شما بودند؟ تاریخ گفته. نورالدین سباغ مالکی در کتاب خودش ثبت کرده که جماعت بسیاری از اعیان امت مثل یحیی بن سعید، ابن جریح، مالک ابن انست، سفیان سوری و ابو حنیفه از امام مطلق و پیشوای کل فلکل حضرت جعفر ابن محمد صادق نقل روایت کردند. من شخصا قبول دارم که از جانب ما اشتباهاتی صورت گرفته. اما اگر اجازه دهید در این فرصت گلهای هم از شیعیان داشته باشم. یه که من و تمام اهل سنت از شما شیعیان داریم. شما شیعیان بعضی از صحابه خاص رسول خدا و برخی از همسران پیامبر را لعن و نفرین می کنید. آیا لعن افراد بزرگی که سالها در کنار رسول خدا بودند و با کفار جهاد کرده و باعث پیشرفت اسلام شدند کفر و ناسپاسی نیست؟ آیا جز این است که منکر کمال ابوبکر عمر و دیگر صحابه منکر پیامبر و قرآن است؟ آیا جز این است که چون این شخصی منکر ضروری دین و کافر است؟ میل نداشتم که جنابالی این قبیل مسائل را در جلسه علنی مطرح کنید. اگر اجازه بفرمایید یک روز صبح شخصا خدمتتان برسم و مسئله را با یکدیگر حل کنیم. این شیوه مناسبتر خواهد بود. من بی تخصیرم. مدتی است که آقایان اهل تسنن مرا تحت فشار قرار دادن که این مطلب را مطرح کنم و مورد بحث قرار دهیم. چون امر میفرمایید مسئله نیست. اولا اینکه فرمودید تعن و صحابه و بعضی از همسران رسول خدا موجب کفر است، حرفی بی پایه و بی اساس است و هیچ دلیلی جز تبخم و تعصب جاهلانه نمی توان برای آن بنا کرد. ابن حزم می میگوید کسی که به اصحاب رسول خدا از روی جهل و نادانی دشنام دهد معذور است و اگر عمدن مرتکب این عمل گردد فاسق خواهد بود و تنها در صورتی کافر خواهد بود که به قصد آن که چون منتصب به رسول خدا هستند آنها را دشنام دهد اگر اندکی دقت کنید خواهید یافت که اعتقاد به کفر کسی که صحابه را دشنام دهد مستلزم کافردانستن بسیاری از صحابه مثل خلیفه دوم و آیشه و معاویه و بسیاری از صحابه خواهد بود که مسلما چون این چیزی مورد قبول شما نیست. به چه دلیل این حرف را می زنید؟ خلیفه دوم عمر ابن خطاب به پیامبر عرض کرد اجازه دهید گردن حاتب منافق را بزنم. در صورتی که حاتب یکی از صحابه بزرگ و از یاران بدر بوده. تمام علما و مورخین خودتان نوشتند که آیشه همواره به خلیفه عثمان دشنا میداد و میگفت این پیر خرفت را بکشید چرا که او کافر شد و نیز در تاریخ ثبت است که معاویه حضرت علی علیه السلام را سب و لعن میکرد. حال بفرمایید کتاب شرح عقاید نصفی ملا عمر تفتازانی را قبول دارید یا خیر؟ کتاب تفتازانی کتاب است. او در کتابش نوشته بعضی از دانشمندان بیش از اندازه به اصحاب پیامبر خوشگمان بودند به طوری که اعمال بد ایشان را نادیده گرفتند و تا قائل به مسومیت صحابه رسول خدا از گمراهی و فسق شدند در صورتی که این چنین نبوده بهترین دلیل بر این مدعا جنگهایی است که بین ایشان رخ داده تاریخ گواه خوبی بر حسادت جاه تلبی و اعمال زشت و ناپسند بعضی از اصحاب است سؤال این است، آیا گفته های تفتازانی باعث کفر اوست یا خیر؟ بهترین دلیل بر اینکه سب و دشنام به صحابه باعث کفر نمی این است که در زمان حیات صحابه بعضی از آنها به برخی دیگر دشنام می‌دادند و با این حال کافر به شمار نمی آمدند. اگر دشنام دادن به صحابه باعث کفر است، پس چرا به خلیفه ابو که در بالای منبر و در حضور امت به امام علی دشنام داده اعتراض نمی چرا تهمت می زنید؟ کجا خلیفه ابو به امام علی دشنام داده؟ ما اهل تهمت زدن نیستیم. تا وقتی که به چیزی یقین نکرده ایم آن را مطرح نمی کنیم. چون موجب بی ارزش شدن بقیه حرفهای ما میشود. ابن عبل در شرح نهج البلاغه ابو ابوبکر در مسجد در مقام انتقاد از علی گفت جزین نیست که علی مانند روباهی است که شاهدش دم اوست ماجراجو و فتنه‌گر است مردم را به فساد می‌کشاند و از افراد ضعیف کمک می‌گیرد آیا حرفی برای گفتن دارید یعنی می‌فرمایید دشنام دادن به صحابه هیچ اشکالی ندارد هرگز من چنین چیزی را نگفتم بدون دلیل و بیجهت به کسی دشنام دادن امری مزموم و ناپسند است ولی باعث کفر نمی شود. شما در صحیح بخاری و صحیح مسلم نگاه کنید. می بینید که در بسیاری موارد اصحاب در حضور رسول خدا به یکی دشنام میدادند و با این حال رسول خدا ایشان را تکفیر نکرد. لازمه این آن است که بسیاری از مورخین و علمای شما که در کتابهایشان اشتباه کاری و افعال زشت صحابه را نقل کرده اند نیز کافر باشند. آقا، به چه دلیل به صحابه بزرگوار توهین می‌کنید؟ چرا می‌گویید اصحاب مرتکب افعال زشت میشدهاند در حالی که رسول خدا فرمود به درستی که اصحاب من مانند ستارگانند. به هر یک از آنها اقتدا کنید هدایت می شوید. بر اساس این حدیث اگر دو دسته از صحابه با یکدیگر جنگ کنند کدام یک از آنها ستاره هدایت خواهد بود سرکاپای این حدیث نشان می دهد که جلیست آیا اغل سلیم این مطلب را می پذیرد که اقتدا به بعضی از صحابه که مرتکب معاسی و گناه شدند موجب هدایت و باعث جلب رضایت خداوند متعال باشد. صحابه عادل بوده و گناه نمی کردند. یک جریان تاریخی را برایتان نقل می کنم تا خودتان قضاوت کنید. سال هشتم هجری عدهی از بزرگان صحابه مجلس اونسی داشتند که در آن مجلس همیگی شراب نوشیدند این خبر جعلی است نمونه دیگر بیاورید اگر مجعول هم باشد جعل آن بر عهده علمای خودتان است آیا نام صاحب مجلس و میهمانان را هم در کتاب آوردند بله ابن حجر در فتح نوشته ابو طلحه انصاری مجلس شرابی تشکیل داد و ابوبکر اشعاری را در مرثیه کفار و کشتگان بدر سوخت. نام‌های مهمانان عبارتند از ابوبکر، عمر، ابو, ابو عبیده جراح، ابی بن که، سهل بن بیضا، ابو عجوب انصاری، ابو تله، ابو دجانه، ابو بکر بن شغوب و انس بن مالک که در آن مجلس هجده ساله و ساقی مجلس بود. خدا قسم این خبر از ساخته های است. اگر کفاره قسم بدهید. این خبر را بخاری و مسلم و احمد ابن هنبل نقل کردند. ببذاریم. یکی دیگر از اعمال زشت اصحاب نقض اهد بوده. نقض اهد یکی از گناهان کبیره است و خداوند متعال افراد ناقض پیمان را لعن فرموده. اصحاب کدام اهد را نقض کرده‌اند؟ همان عهدی که رسول خدا به امر پروردگار در روز قدیر از آنها گرفت. تمام شیعه و اکثر سنی‌ها معترف‌اند که پیامبر بزرگ اسلام در حجت الوداع در روز 18 ذی سال دهم ده هجرت در محلی به نام قدیر خم نزدیک به هفتاد هزار مسلمان را جمع کرد و خطبه‌ای بسیار طولانی برای آنها قرائت کرد. در این خطبه آیاتی که در مورد علی علیه السلام نازل شده بود را قرارت فرمود و همگان را به مقام قدس ولایت الهی امیر متوجه ساخته و فرمود ای مردم آیا من اولا به تصرفت شما در جانهای شما نیستم؟ ارز کردن چرا؟ فرمود پس هرکس من مولای او هستم این علی مولای اوست سپس دستها را به دعا برداشت و دوستان علی را دعا کرد و دشمنان او را نفرین فرمود. سپس بر طبق دستور پیانبر برپا شد و امیر در خیمه نشست و تمامی مسلمانان یک به یک با آن حضرت بیعت کردند. رسول خدا فرمود با علی بیعت کنید چرا که من از جانب پروردگار معموریت دارم از شما برای علی بیعت بگیرم. جالب اینجاست که ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر جزء اولین افرادی بودند که در این روز با خلیفه بلافصل رسول خدا علی بیعت کردند چطور میشود باور کرد که چنین امر مهمی اتفاق افتاده باشد و هیچ یک از علمای بزرگ آن را نقل نکرده باشند چه کسی گفته که این واقع را هیچ یک از علما نقل نکرده برای عالمی مثل شما که اهل کتاب و مطالعه هستید، چنین حرفی خیلی زشته است. بیش از 300 نفر از بزرگان علمای خودتان این حدیث را در کتاب‌هایشان آوردند و حدود 100 نفر از صحابه این حدیث را روایت کردند. حتی بعضی از بزرگان عالم شما یک کتاب مستقل در این باره نوشتند. بسیار عجیب‌تر که این حدیث را خلیفه دوم عمر هم نقل کرده. اگر ممکن است روایت خلیقلا بیان کنید. او روایت کرده رسول خدا علی را به عنوان بزرگ و پیشوای قوم نسب کرد و او را مولای همگان معرفی کرد. سپس برای دوستان او دعا و برای دشمنانش نفرین کرد. سپس عرض کرد خدایا تو شاهد و گواه منی. در این گام جوان زیبارویی در کنار من بود. رو به من کرد و گفت پیامبر عهد محکمی را منعقد کرد. این عهد را جز فرد منافق هیچ کس نمیشه کند. ای عمر موازد باش تو جز افرادی که این عهد را میشه نباش. پس من به رسول خدا عرض کردم وقتی شما در باره علی سخن میگفتید جوانی نزد من بود که چنین و چنان گفت. رسول خدا فرمود او از اولاد آدم نبود بلکه جبرئیل بود که به این صورت ظاهر شده بود تا آنچه را در مورد علی گفتم بر شما تاکید کند. آیا سزاوار بود که چون این عهد و پیمان محکمی بعد از دو ماه زیر پا گذاشته شود و به خاطر هوا و حوست حق امام علی علیه السلام پایمال شود و آتش به در خانش برده شود و با شمشیر تهدید و با اکراه به بیعت با ابو مجبور شود؟ چرا به اصحاب رسول خدا توهین می ابو حامد غزالی در کتاب سر می نویسد؟ قول حقان است که علی جانشین به خلیفه بلافصل رسول خداست. چون درستی قضیه قدیر و خم واضح است هر اعتراضی بیهوده. چه دلیلی بهتر از این است که عمر پس از تمام شدن سخنان پیامبر به علی کرمل لابد جهو تبریک گفت. این نحوه تبریک گفتن نشانه تسلیم او در برابر خلافت علی بوده. اما نفس بر آنان غالب شد و خوب به ریاست و جاه طلبی باعث شد به قهقرا برگردند و احکام قرآن و فرمانهای رسول خدا را به بازی بگیرند و دین را به دنیا بفروشند. اگر جز این بوده چرا در هنگام بیماری و وفات پیامبر مانع نوشتن وسیعتان حضرت شدند؟ آقایان محترم اگر با دقت به بیانات این عالم بزرگ سنی گوش دهید حساب کار خود را خواهید کرد شکی در اصل حدیث قدیر نیست اما نه به این اهمیت و آب و تابی که شما میفرمایید کلمه مولا در این حدیث به آن معنایی که گفتید نیست بلکه به معنای ناصر و دوست است پیامبر می‌خواست توصیه علی را به مردم کرده باشد که بعد از وی کسی او را اذیت نکند این ادعای شما با مفهوم آیه 67 سوره مایده که در روز قدیر خم نازل شده مطابقت نمی کند. در این آیه خداوند متعال می‌فرماید: یا آیه هر رسول بلق انزل زلیلک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته والله و من الناس ناس. چه کسی گفته که این آیه مربوط به روز قدیر و برای این امر نازل شده؟ حدود سی نفر از بزرگان شما از جمله جلال الدین سویوتی نزول این آیه را در شعن امیرالمؤمنین و در روز قدیر دانستند. حتی قاضی روزبهان با وجود دشمنی و تعصبی که دارد نوشته وقتی این آیه نازل شد رسول خدا دست علی را گرفت و فرمود من کنتو مولا فهازا علی اون مفهوم این حدیث می‌فهماند که امر مهمی در جریان بوده که این همه تاکید و تهدید در کلام پربردار بیان شده علاوه بر این توجه به آیه 3 سوره مائده که می‌فرماید alyaw akmaltu lakum dinakum watamtum alaykum ni'mati warazitu روشن می‌کند که جریان مهمی در روز قدیل رخ داده و ترک شما می‌فرمایید نبوده آیه سه سوره معایده در روز عرفه نازل شده، نه در روز قدیر. بله، بعضی از دانشمندان شما همچون امام احمد ابن همبل و امام آن را مختص روز قدیر می دانند. سبت جوزی گفته که ممکن است این آیه دوبار نازل شده باشد، یک بار در روز قدیر و یک بار در روز عرفه. پس از نزول این آیه رسول خدا بسیار مسرور شد و خطاب مردم فرمود، خداوند بزرگ دین را کامل و نعمت را تمام کرد و به رسالت من و ولایت علی راضی شد. هیچ معنا ندارد که رسول خدا آن جمعیت عظیم را در آن هوای گرم و داغ عربستان در محلی بی آب و علف سه روز معطل کند و تمامی افرادی که جلوتر رفتند برگردند و خطبهی بلند و بالا انشا فرماید. فقط به خاطر اینکه بگوید علی را دوست داشته باشید و او را اذیت نکنید و بعد از آن خداوند متعال آیه تکمیل شدن دین و اتمام نعمت را نازل بفرماید. انسان فهیم وقتی به این جریان دقیق می شود به خوبی می فهمد که یقینا موضوع مهمی در کار بوده. ممکن است بعید به نظر برسد. اما مسلما دلیلی بر باطل بودن مطلبی که عرض کردم نمیتواند باشد. مسئله نیست. گفتار سفت ابن جوزی را ارز می کنم تا شاید آن را به عنوان دلیل قبول کنید. او می نویسد جمله الست اولا بالمؤمنین من انفسهم که در ابتدای کلام پیامبر آمده ثابت می کند که کلمه مولا در حدیث قدیر به معنای اولا به تصرف است. حافظ اول فرج اسبانی از رسول خدا نقل کرده هر که من ولی اولا به تصرف او هستم علی نیز ولی به اولا به تصرف اوست محمد بن تلهی شافعی می نویسد حدیث قدیر از اسرار آیه مباهل است زیرا خداوند متعال در آیه مباهل علی, علی علیه السلام را به منزلین نفس پیامبر خوانده و بین نفس رسول خدا و علی جمع کرده است احمد ابن حنبل در کتاب خود احتجاج امیر مؤمنان پیرامون خلافت و امامت را بیان می کند و میگوید گوید که آن حضرت در رحبه کوفه در مقابل مردم ایستاد و فرمود شما را به خدا سوگند. هر که در قدیر خم از رسول خدا درباره من چیزی شنیده است برخی زد و گواهی دهد. سی نفر از اصحاب برخواستند و گفتند ما در روز قدیر خم دیدیم که رسول خدا دست تو را گرفت و به جمعیت فرمود. آیا می دانید که من سزاوارتر به مؤمنان از خود آنها هستم؟ مردم گفتن داری؟ پیامبر فرمود، هر که من مولای اویم، این علی مولای اوست. جالب اینجاست که حسان ابن نیز نیست، در زمینه جریان قدیر در حضور پیامبر اشعاری سرود و مورد تشویق رسول خدا قرار گرفت. روایت شده که پیامبر پس از شنیدن اشعار او به وی فرمود ای حسان، مادامی که با کلام خود اهل بیت مرا یاری کنی، معید به روح القدس هستی. حسان در زمین این اشعار از قول رسول خدا میگوید ای علی، همانا من راضی شدم که بعد از من تو هادی و امام بر خلق باشی. حال انصاف دهید که اگر منظور پیامبر از کلمه مولا غیر از امام و هادی باشد، آیا نباید پیامبر به حسان می فرمود که تو اشتباه می و منظور من از مولا دوست بوده و نهادی و امام خلق؟ تصور می این مقدار استدلال برای اثبات موضوع کافی باشد. حال به مسئله دیگری می پردازی. صحبت بر سر این بود که اصحاب نقض اهد کردند، ما میگوییم ولی اینکه که مولا به معنی دوست باشد باز هم اصحاب شرط دوستی را با آن حضرت وفا نکردند و نهایت دشمنی را نسبت به آن سربر اعمال داشتند چرا احساسات را تحریک کنید؟ چرا میگویید اصحاب بیشترین دشمنی را با علی کردند من میشمارم شما داوری کنید آتش زدن در خانه آزار دادن همسر و فرزندان کشتن محسن تهدید به قتل، ناسزاگویی و اهانت ریسمان به گردن پیچاندن و به زور به سوی مسجد کشاندن. آیا به نظر شما کافی نیست؟ انشاءالله ما در محکمه الهی تمامی شما علما را به پای میز محاکمه میکشانیم و داد خود را طلب می کنیم تا تقاس هایی که در حق ما شده را در محضر رب متعال از شما بگیریم. چه بزرگترین بزرگترین ظلمی که به ما و بلکه به تمام بشریت شده، قصد حق جده ما فاطمه زهر بسیار خوب، فرض کنید الان پای میز محاکمی الهی هستید، ثابت کنید که به فاطمه ظلم شده. تفاوتی که اینجا با محکمه عدل الهی دارد این است که آنجا تعصب و کتمان حق راه ندارد. من اصلاً اهل لجبازی و دشمنی نیستم، متعصب هم نیستم، در طول این مدتی که در محضر شما بوده و هستم، هر زمان که حرف حساب شنیدم ساکت کندم، با اینکه می‌توانستم میتوانستم مغالطه و یا مجادله کنم. مطمئن باشید که من آن آدم شبه اول نیستم و امید دارم با ولایت آل پیامبر از دنیا بروم. خداوند به شما خیر بسیار اتا کند، استدعا دارم به عرائز من گوش دهید و به عنوان یک قاضی عادل حق را به صاحب آن بدهید. بفرماید. برخی افراد نادان می گویند چرا امریکی 1300 سال قبل رخ داده و آن موجب کدورت و اختلاف می شود را مطرح می کنید. بر جواب می گوییم که اولا اگر دعوا بر سر ارث بوده پس در هر زمانی به وسیله ورس قابل تر هست ولی اون که سال از شروع اختلاف آن گذشته باشد. سانیانه. روشن شدن این مطلب باعث تشخیص راه حق از راه باطل می شود. اگر برای همه ما روشن شود که حق با علی است، آنگاه اتحاد واقعی بین مسلمانان عالم برقرار می شود و همه شیعه می شوند و در نتیجه خداشناسی، پیامبر شناسی، نحوه انجام عبادات، همه و همه تفاوت می کند. پس می بینید که اگر همین دعوا به نتیجه برسد، آثار بسیار وسیع و دامنه را به دنبال دارد. لذا ترهی این مباحث تا زمانی که حتی یک شیعی روی زمین وجود دارد، جا دارد. پس از این مقدمه می خواهم سؤالی را از محضرتان بپرسم بفرمایید می اگر پدری در زمان حیاتش ملکی را به فرزندش ببخشد، آیا این ملک پس از فوت پدر جزء ماتره که میت به حساب می آید یا نه؟ مشخص است که آن ملک جزء ماترک نیست و مشمول قانون ارس نمی شود. بعد از فتح خیبر عده از رؤسای فدک خدمت رسول خدا آمدند و قرارداد صلحی امضا کردند که بر اساس آن نصف املاک فدک از آن رسول خدا گردید بعد از این واقعه آیه و اته قربا نازل شد پس جبرئیل عرض کرد خداوند میفرماید فدک را به فاطمه بده طبق امر الهی فدک در زمان حیات رسول اکرم به فاطمه زهرا سلام الله علیه ها واگذار شد و فاطمه قوت خود و فرزندانش را از درآمد فدک بر و بقیه را بین فقرا تقسیم می‌کرد. کرد. قصب فدک توسط معمورین ابو یکی از دردابرترین وقایع تاریخ پس از وفات رسول خداست. قصبی در کار نبوده بلکه به حدیث رسول خدا عمل شده. ابو بک از رسول خدا نقل کرده که فرمود ما جماعت انبیا ارس نمی گذاریم. هرچه از ما باقی بماند صدقه است. اولا مگر خود شما نفرمودید که اگر پدر در زمان حیاتش ملکی را به فرزندش بدهد دیگر جزء ما ترک او حساب نمی آید و مشمول ارس نمی شود. به عبارت دیگر اصلا صحبت از ارس و میراس نیست که شما میگویید انبیا ارس نمی گذارند. سرتاپای این حدیث جعلی است. جالب است. شما به راحتی چون این حدیث معروفی را جعلی میخوانید. اگر اندکی دقیق شوید شما هم به جعلی بودن این حدیث پی می‌برید. این حدیث میگوید ما انبیا ارث نمیگذاریم و حالانکه آنکه آیات بسیاری در قرآن وجود دارد که راجع به عرص گذاشتن است. قرآن کریم میفرماید و ورس سلیمان داوود حضرت فاطمه زهرا در مناظره ای که با ابو بکر داشت این آیات را عنوان کرد و فرمود ای پسر عویق و حافه، آیا در کتاب خدا نوشته شده که تو از پدرت ارث ببری و من از پدرم ارث نبرم؟ افتراع بزرگی به خدا میبندید. آیا عمدن کتاب خدا را کنار گذاشته و قرآن را پشت سر اید؟ مگر در قرآن مجید نیامده هرگاه یکی از شما را زمان مرگ فرارسید چون دارای متاع دنیاست برای پدر و مادر و خویشانش به نحب شایسته وصیت کند شما بر اساس چه حکمی مرا از ارث محروم کردید آیا خداوند شما را به آیه‌ای مخصوص گردانیده و پدرم را از آن آیه اخراج کرده آیا شما به خاص قرآن از پدرم محمد و پسرعمویم علی داناتری؟ چون خلیفه و اطرافیانش در برابر بیانات مستدل لان حضرت درمانده شدند، بنا را بر فخاشی و توهین گذاشته و هوچیگری را انداختند حضرت فاطمه زرا خطاب به ایشان فرمودند، امروز دل مرا شکستید و حق مرا زایه کردید. من در روز قیامت در محکمه عدل الهی حق خود را از شما خواهم گرفت. هیچ کس جرعت جسارت و توحین ودیعه پیامبر و رسول خدا را نداشته. احتمالا اشتباه میکنید. آری هیچ کس جرأت نداشت جز خلیفه شما ابوبکر که چون در مقابل استدلال های حضرت فاطمه مجاب شد سوار بر منبر شد و بنای جسارت و حتاکی را به فاطمه و شوهر گرانقدرش علی گذارد. فکر میکنم این حرف ها همه و همه تهمت هایی است که عوام شیعه به خلیفه زده شیعه با وجود این همه مدرک و سندی که در کتاب های شما وجود دارد، احتیاجی به جعل حدیث ندارد. پیشنهاد می کنم کتابهای تاریخی خودتان را مطالعه کنید تا به درستی حرفهای من پی ببرید. مطلبی که خدمتتان عرض کردم بر اساس نوشته ابو احمد ابن عبدالعزیز جوهری است. به این می پس از اتمام خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها، ها امیر ابو کرد و فرمود چرا فاطمه را از میراس پدرش محروم کردی حالانکه که در حیات پدرش در این ملک متصرف بوده. ابوبکر گفت: فدک مال همه مسلمانان است. اگر فاطمه شاهدی بیاورد که فدک ملک اوست، آن را به وی پس خواهم داد. حضرت علی علیه السلام فرمود: آیا درباره ما، به غیران چه درباره دیگران حکم میکنی میخواهی حکم نمایی؟ بر طبق فرمان رسول خدا، شاهد و گباه را مدعی می‌آورد، نا متصرف. تو بر خلاف این حکم قطعی و مسلم از فاطمه که متصرف در ملکت شاهد طلب میکنی؟ آیا نمیدانی که قول فاطمه که یکی از اصحاب کسا و مشمول آیه تطهیر است عین حقیقت است آیا اگر دو نفر در حضور تو شهادت دهند که فاطمه مرتکب حرام شده چه کنی؟ گفت مانند دیگران علیه او حکم جاری می‌کنم حضرت فرمود در این صورت از جمله کفار خواهی بود، زیرا شهادت خدا را در باره تارت فاطمه نادیده گرفته و به شهادت دو انسان جایزالخطا ترتیب اثر داده ای؟ آیا از نظر تو فاطمه برای مال بیارزش دنیا مرتکب دروغ و قسم می شود؟ تو شهادت صدیق اطهر را رد می کنی و شهادت یک مرد اعرابی که بر پاشنه پای خود بول می کند را قبول می کنی؟ آن حضرت پس از گفتن این جملات با ناراحتی مسجد را ترک کرد، هیاهوی عجیبی در میان مردم بپخواست، ادهی از مردم می گفتند حق با علی و فاطمه است، چرا در حق دختر پیانبر این گونه عمل می شود؟ در این هنگام، ابو بالای منبر رفت و گفت، ای مردم چرا سر و صدا می کنید؟ به این دلیل او این حرفا را می زند که من شهادتش را رد کردم، او مثل است که شاهدش دم اوست. او ماجراجو و فتنه است. فتنه های کوچک را بزرگ نشان میدهد و مردم را به فساد میخواند. علی از زنان و زعفا کمک میگیرد و مانند ام تخال که زن فاهشی در جاهلیت بوده می باشد. آیا باور میکنید که منظور ابو از این حت تاکیها و دشنامها دو محبوب و محبوبه خدا یعنی علی و فاطمه است؟ آیا این پیرمرد که خود را از نزدیکان پیامبر خدا میداند، میفهمد چه میگوید؟ اگر کسی بیاید و در مقابل همه حضار در این مجلس صدا بلند کند و بگوید این آقای حافظ مثل روباه است و جناب شیخ مثل دوم و مانند یک زن فاش است، چقدر به من و شما سخت میگذرد؟ الان که در حال بیان این مطالب هستم، تمام بدنم می و نمی توانم جلوی را بگیرم. خدایا، به رضای تو راضیم و به روز حترانی تو انتقام خواهی آدلانه تو دلم را خوش کردن. ای متعال و ای بلند مرتبه، پس ما هم همچون جده مظلوم من سکوت می کنیم و منتظر خواهیم. اما در ادامه بحث گذشته حدیثی را برای نقل می کنم. از رسول خدا نقل است که هر که علی را دشنام دهد مرا دشنام داده و هر که مرا دشنام دهد خدا را دشنام داده است و نیز هر که علی و فاطمه را آزار دهد مرا آزارده و هر که مرا آزار دهد خداوند را آزارده است و اما راجع به این که آیا انبیا از خود ارث می یا خیر؟ خوب است به حدیث معروف پیامبر توجه کنید که انا مدینت العلم و علیون بابها و من اراد المدینت فلیهت من بابها چگونه معقول است که وسیع پیامبر ما ترک پیامبر را نداند؟ اولا این حدیث از نظر علما فاقد اعتبار است ثانیا موضوع وسیعیت پیامبر نیز است. چون بخاری و مسلم از آیش نقد کردند. در وقت فوت پیامبر سر مبارک ایشان بر سینه من بود تا از دنیا رفت و من شاهد بودم که وسیعتی نکرد انصاف دهید اگر وسیعتی در کار بوده قطعا ام المومنین آیشه از آن خبردار می شد بر سند حدیث مدینه کم لطفی این حدیث را اکثر علمای خودتان در کتابهای شناوردند اما در مورد وسیعت ایش راهی غیر از پذیرش آن ندارید چون اسناد مربوط به آن مافوق تباتور است. جناب آقا، آیا وسی غیر از خلیفه است؟؟ وسی همان خلیفه است. اما گونه که وسیع را پیامبر تعیین می کند خلیفه را هم نبی تعیین می کند. این مسئله از نظر ما حل شده. ولی اینکه از نظر شما چگونه است؟ نمیدانم؟ و اما در جواب جناب شیخ که به حدیث آیشه استناد کردند، حدیثی را از قول عمر یادآور می عمر گفت، رسول خدا در روزی که عقد و بین اصحاب برقرار کردند، فرمود، این علی برادر من در دنیا و آخرت و خلیفه من در اهل من و وسیع من در امت و وارث علم من و ادا کننده دین من است. بین من و علی جدایی نیست، نفع او نفع من و ضرر او ضرر من است کسی که او را دوست بدارد مرا دوست داشته برکه او را دشمن بدارد مرا دشمن داشته است امام احمد ابن همبل در مسند مینویسد، نویسد انس ابن مالک گفت به سلمان گفتم از پیامبر سوال کن که وسیع ایشان کیست سلمان عرض کرد ای رسول خدا وسیع شما چیست؟ فرمود ای سلمان وصی موسا چه بود؟ عرض کرد یوشع ابن نون فرمود وصی من وارث من عدا کننده بدهی بدهی‌های من و وفاکننده به های من علی ابن ابی طالب است. گمان می‌کنم همین دو حدیث برای اطمینان جناب شیخ کافی باشد. و اما احادیث بسیار معتبری مبنی بر اینکه در هنگام احتضار پیامبر سر مبارک ایشان بر سینه علی علیه السلام بوده در کتاب در کتب شما هم وجود دارد. بخاری از ام سلمه و جابر ابن عبدالله انصاری نقل می کند که در هنگام وفات رسول خدا سر مبارک ایشان بر سینه امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود تا روح از بدن شریفش جدا شد. از امیرالمؤمنین در نهجول بلاغه نقض شده هراینه رسول اکرم قبض روح شد در حالی که سر مبارک او بر سینه من قرار داشت و روح آن حضرت از دست من خارج شد و من دستهایم را به صورت هم کشیدم. علاوه بر این احادیث چه دلیلی برای اثبات وسایت امیر مومنان بهتر از این که امور مربوط به وسیع اعم از قسل و کفن و دفن و پرداخت دیون توسط علی صورت گرفت. اگر این اخبار صحیح هست چرا هیچ اثری از وصیتنامه رسول خدا در کتاب ها نیست در حالی که از خلیفه اول و دوم وصیت هایی در کتاب ها وجود دارد با وجود دستور صریح قرآن کریم به نوشتن وصیت چرا رسول خدا در هنگام فوت وصیت نکرد جد بزرگوارم با وجود تأکیدی که برای نوشتن وصیت می‌فرمود و مردن بدون وصیت را مردن جاهلی میدانست. به علت حتاکی برخی از صحابه موفق به نوشتن وصیت برای خود نشد. چه کسی قدرت و جرأت داشته که رسول خدا را ادن نوشتن وصیت من کند؟ در صورتی که قرآن اطاعت از رسول خدا را بر همگان واجب کرده؟ عمر ابن خطاب آه، به شما توصیه میکنم به این اخبار مزخرف و جلی ترتیب اثر ندهید آقا من هم به شما سفارش میکنم تند نروید. بخاری و مسلم و احمد ابن حنبل آوردن که رسول معظم پیش از رحلت در بستر بیماری به اطرافیان فرمود: قلم و کاغذی برایم بیاورید تا برای شما مطلبی را بنویسم که بعد از من اختلاف نکنید. سپس عمر گفت: این مرد را که هزیان میگوید به خود واگذارید. کتاب خدا ما را بساست. این اولین فتنه و تفرقه و فسادی بود که در میان مسلمین در حضور پیامبر اسلام واقع شد. از شما انتظار نداشتم آقا که به مقام خلیفه جسارت و اهانت کنید. آه من جسارت کردم یا خلیفه؟ آیا مقام خلیفه بالاتر است یا مقام پیامبر؟ عمر در حضور اهل بیت و صحابه با کمال جسارت، نسبت هزیان به رسول خدا می و سر و صدا را می اندازد. آیا توهینی از این بالاتر در تاریخ اسلام سراغ دارید؟ آقای محترم چرا نسبت به مقام منی خلیفه توهین می کنید؟ اولا چرا با شنیدن اهانت به رسول خدا متاثر نشدید؟ ولی به محض شنیدن یک اعتراض بجا و وارد نسبت به عمل کرده عمر متاثر و ناراحت می شدید. سانیان، این تنها من نیستم که به عمر اعتراض می کنید. بلکه علمای خودتان هم وقتی به این فراز از تاریخ میرسند صدا به ناله و تاسف بلند میکنند قاضی عیاز شافعی مینویسد گوینده این کلام هیچ ایمانی به رسول خدا نداشته و از معرفت کامل به مقام و مرتبه پیامبر بی بهره بوده چون در نزد ارباب مذاهب واضح است که انبیاء ازام چه در حال صحت و سلامت و چه در حال بیماری و کسالت متصل به عالم غیب هستند و لذا در تمامی حالات مردم بایستی از او اطاعت کنند شهرستانی نیز متعرض این واقعی تاریخی می شود و می نویسد اولین اختلافی که در اسلام واقع گردید همین عمل عمر بود اگر این کلام از خلیفه عمر بوده گمان نمی کنم سوء ادب باشد بلکه منظور ایشان این بوده که پیامبر هم مانند دیگران در اثر قلبه درد، متوجه خود نیست اعتقاد به اسمت پیامبر جزء ضروریات دین اسلام است اگر هنگامی که رسول خدا در مقام هدایت و ارشاد می‌فرماید میخواهم چیزی بنویسم که گمراه نشوید امکان سلب اسمت از او باشد پس برای هیچ یک از حرفای او هم نمی حسابی حسابی کرد چگونه می توان به چنین پیغمبری معتقد اگه تصور میکنید که خدا یک پیامبر هزیانگو یانگو برای هدایت خلق میفرستد چرا این گونه غذابت میکنید؟ بالاخره وظیفه ما توجیه افعال بزرگان است چون خلیفه دوم مجتهد بوده و برای حفظ دین اشتحاد کرده پس هیچ اعتراضی بر او وارد نیست ولو اینکه در این اشتحادش دوچار اشتباه شده باشه هر عذری به تراشید عذر بدتر از گناه است اولا اشتهاد در مقابل نس باطل است زیرا نقض قرارداد است ثانیاً آیا حفظ دین بر عهده عمر بود یا بر عهده پیامبر آیا پیامبر مسمم به انجام کاری که بر خلاف مصالح دین است می شود و پسر خطاب برای اینکه مبادا دین از بین برود جری رسول خدا را میگیرد مالکم کیف تحکمون شاید اوضای مملکت به گونه‌ای بوده که خلیفه به دلیل وخامت اوضا و برای جلوگیری از بروز فتنه این عمل را انجام داده جواب جنابالی را قرآن می‌دهد. خداوند متعال می‌فرماید هیچ مرد و زن مؤمنی را در کاری که خدا و رسول حکم کنند اراده و اختیاری نیست و هر کس نافرمانی خدا و رسول کند همانا در گمراهی آشکار افتاده است آقای محترم اگر به آخر کلام خلیفه دقت کنید در میابید که نظر او خواهی برای دین بوده اتفاقا همین حرف او که گفته کتاب خدا ما را بس است دلیل بر عدم معرفت او به احکام قرآن است اگر او قرآن را میشناخ میفهمید که کتاب خدا بس نیست بلکه احتیاج به روشن کننده دارد این حرف امر برخلاف حدیث معروف سقلین است که مورد اتفاق همه اولم است رسول خدا در مواقع متعدد میفرمود من دو چیز گرانبها در میان شما میگذارم که هیچگاه از هم جدا نمیشوند تا در کنار حوز کوسر بر من وارد شوند و آن دو چیز قرآن و اعتراع من است. اگر به این دو متمسک شوید نجات می آبید و هرگز گمراه نخواهید شد. اگر کتاب خدا شما را بسه است، پس با آیه فصل اهل ذکره این کنتم لا تعلمون چه می کنید؟ در زیل این آیه می نویسد منظور از اهل ذکر اصرت پاک نبی می باشد. چه امیر مومنان هم می‌فرماید من کتاب ناطق هستم و قرآن کتاب سامت است. جالب اینجاست که یکی از علمای شما به نام قطب الدین شافعی به این گفته خلیفه لبخند می‌زند و می‌گوید. این سخن خلیفه مثل سخن کسی است که بگوید با وجود کتاب طب دیگر احتیاجی به طبیب ندارد. از عجایب روزگار این است که وقتی ابوبکر در حالت احتضار قرار گرفت و عمر را به عنوان خلیفه بعد از خود معرفی کرد، صدای اعتراض عمر بلند نشد و با وجود اینکه در آن مجلس حاضر بود، نگفت کتاب خدا ما را بس است. چون از نظر وی اینجا دیگر کتاب خدا بس نبود و امت احتیاج مبرمی به وسیعت ابوبکر داشتند. از کجا معلوم که موضوع وسیعت پیامبر مربوط به امر خلافت بوده؟ اولا بر فرض که موضوع وسیعت مطلب غیر از خلافت بوده. باز هم عمل زشت و ناپسندی عمر انجام داده. سانی هم. بر فرض که الایازو بالله رسول خدا هزیان گفته. چه مانهی داشت که به خاطر رعایت احترام و برای دلخوشی او در آخر عمر اجازه می دادند آن چه دلش می خواست را بنویسد. سالسند، این همه اصرار و سر و صدای عمر برای نیاوردن قلم و کاغذ دلیل بر این است که پیامبر مطلبی را که می خواست بنویسد برخلاف میل عمر بوده. رابند. با عنایت به این فرموده رسول خدا که این وصیت مانع گمراهی و اختلاف بعد از من می شود مشخص است که موضوع وصیت خلافت و جانشینی بود بر ما و بر امت پیامبر بسیار سخت است که می شنوند برخی افراد با سر و صدا و جار و جنجال مانع نوشتن وصیت پیامبرشان شدند البته پیانبر اکرم به صورت شفاهی و زبانی وسایه خود را در خصوص امیر مؤمنان در موارد متعدد بیان داشت. لیکن چه خوب بود که خلافای شما مانع از وسیعت کربیان حضرت نمیشدند تا امت دچار سرگردانی و حیرت نشود. از تناقض رفتار مردم دنیا این است که ابوبکر عمر در مورد احکام دینی که خود از آن بی اطلاع بودند، دست به دامان امیر مؤمنان میشدند. اما در مورد احکام خلافت و وسایت و تشکیس ماترک پیامبر نه تنها حرف علی علیه السلام را قبول نمیکردند بلکه به ایشان توهین اعانت نیز میکردند. چرا نسبت به اطلاعی از احکام دین را به خلفای راشدین میدهید؟ در تاریخ مشهور است که هرگاه امری در عمر مشکل میشد، آن را از علی میپرسید. اگر به تاریخ خلفا مراجع کنید، موارد متعددی را میبینید که نشان از بیاطلاعی خلفا و مراجعی ایشان به امیر مؤمنان دارد. از بحث اصلیمان دور نیفتیم، خلاصه کلام ما این است که حدیث مورد استناد ابوبک برای قصب فدک از درجه اعتبار ساقط است و هیچ ارزشی ندارد، زیرا مخالف با عقل و نقل و حتی عمل کرد خلفای راشدین است. منظورتان چیست؟ عملکرد کدام یک از خلفای راشدین را میگویی؟ عملکرد کرده و عمر. در تاریخ زبط است که ابوبکر از بابت سحمل ارس زنان پیامبر به دختر خودش آیشه و به دختر عمر حفظه حجراتی را اختصاص داد. از این جالبتر اینکه که پس از شنیدن استدلالات حضرت صدیقه تاهره دستور برگشت فدک را به صاحب آن، فاتمه زهرا صادر کرد. این حرف شما خیلی عجیب است، من تا به حال نشنیده بودم که ابو فدک را برگردانده باشد، از این موارد عجیب در تاریخ خلفا بسیار است، علی ابن برهان الدین می نویسد، ابو از گفتار فاتمه متاثر شد و گریه کرد و کاغذی برداشت و دستور رد فدک را نوشت و به فاتمه داد، عمر در بین راه فاتمه را دید و نامه را از او گرفت و پاره کرد، عجیب تر از این رد کردن فدک به برسه فاطمه توسط عمر در دوره خلافت اوست. آیا اشتباه نمی کنی؟ اشتباه نمی کنم. من در ابتدا گفتم که از این موارد عجیب و غریب در تاریخ خلفا بسیار یافت می شود. علامه سمهودی می نویسد ابو در زمان خلافتش منطقه فدک را تصرف کرد ولی عمر در دوره خلافت خود آن را به علی و عباس باگذار کرد. شاید عمر ابن عبدالعزیز منظور نظر بوده. علی علیه السلام و عباس در زمان عمر ابن عبدالعزیز در قید حیات نبودند. فدک نهله فاطمه بود، قاسبانه از او گرفته شد و وقتی به مقاصد دنیوی خود رسیدند و بینیاز از امثال فدک شدند، آن را به ورثه آن حضرت برگرداندند. اگر فدک نهله فاطمه بوده، پس چرا او ادعای ارث کرد؟ در ابتدا حضرت فاطمه سلام الله علیها ادعای نهله کرد ولی متاسفانه برخلاف مبازین شرعی و عرفی ابوبکر از ایشان شاهد طلب کرد لذا آن حضرت شهودی را معرفی کرد اما مورد قبول ابوبکر واقع نشد پس از اینکه از این طریق اقامه حق محقق نشد ادعای عرض کردند آیا شما دلیلی بر این ادعایتان دارید بله، یکی از متأثرترین علمای اهل سنت به این نکته اشاره کرده. ابن حجر می نویسد ادعای فاطمه در ابتدا نهله بود. چون شهودش مردود شدند، ناراحت شد و گفت دیگر با شما سخن نخواهم گفت که به این گفتش هم عمل کرد. در اینکه که فاطمه خیلی رنجیده خاطر شد حرفی نیست. ولی خلیفه هم تقصیری ندارد. چون او مجبور به رعایت زواهر شرع بود. میدانید که آیه شهادت عمومیت دارد و برای اثبات ادعا شهادت دو مرد یا چهار زن و یا دو مرد و دو زن اعتبار دارد. اگر بخواهم جواد شما را بدهم بحث طولانی می شود و آقایان خسته می پس اگر موافقید ادامه این بحث را به جلسه بعد موکول کنیم. تمننا می کنم سخن را قطع نکنید چون بحث به جاهای حساس رسیده. اگر جلسه تا صبح هم طول بکشد ما حاضریم در خدمتتان باشیم من ملاحظه حال حاضرین را میکنم اما حسب الامر شما مانعی ندارد اما اینکه جناب آقای حافظ میفرمایند خلیفه بر اساس ظاهر شرع حکم کرده کاملا اشتباه است چون بر طبق موازین شرعی از مدعی دلیل طلب می شود نه از متصرف ضمنا آیه شهادت اگر چه دارد ولی استثنا پذیر هم هست چه گله؟ شهادت حزیمت ابن سابت در نزد پیامبر به عنوان دو شهادت تلقی شده که به همین خاطر به او زو شهادتین این می گفتند پس می بینید که مورد استثنا در زمینه شهادت وجود دارد آیا قبول ندارید که اگر فاطمه هیچ شاهدی جز تصرفش بر املاک فدک را نداشت باز هم برای اثبات ادعایش کافی بود. واقعا عجیب است که در حکومت ابوبکر شهادت یک مرد اعرابی که بر پشت پای خود بول می کند مورد قبول است. اما شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلام که مستاق اصیل صادقین در آیه شریفه و کونوم مع صادقین است غیر قابل قبول است. دلیل شما بر اینکه علی مستاق این آیه است چیست؟ علما در زیل این آیه نوشتند که منظور از صادقین همانا محمد و علی و اطرت نبی اکرم هستند. خداوند بزرگ مرتبه در سوره زمر می فرماید و لذی جا به صدق, صدق بهی اولایک همول متقون به شهادت علماء خودتان در این آیه نیز مراد از مصدق امیر است. از ابن عباس روایت شده که رسول اکرم فرمود صدقین سه نفرند، حزقیال، حبیب نجار و علی که علی از آن دو افضل است. بایشه از رسول خدا نقل میکند علی با قرآن است و قرآن با علی است آن دو از یکدیگر جدا نمی شوند تا در کنار حوز کوسر بر من وارد شوند همچنین از نبی مکرم منقول است هر که علی را اطاعت کند مرا اطاعت کرده و هر که مرا اطاعت کند خدا را اطاعت نموده و هر که مرا منکر شود خدا را اینکار کرده است اگر به همین احادیثی که در کتابهای خودتان است خوب دقت کنید مسئله حل است چگونه شما راضی میشوید که شهادت فردی که صادق و مصدق است و انکار او در ردیف انکار ذات خداوند است رد شود و اما اینکه گفتید خلیفه خیلی محتاط بوده و رعایت شر را میکرده هم خلاف واقع است آیا طلب شهود از متصرف رعایت شر است این را همه بدانید که این سخت ها و قوانین و موازین فقط در حق جده ما فاطمه زهرا عمل میشد وگرنه برای دیگران اینطور نبود. سیاست یک بام و دو هوا در حکومت ابوبکر جاری و معتبر بود. ابن عبل از استاد خود علی ابن الفارقی پرسید آیا فاطمه در ادعای خود صادق بود؟ گفت بله. پرسید پس چرا خلیفه فدک را به او رد نکرد؟ استاد وی تبسمی می کرده و گفت اگر آن روز شهادت فاطمه قبول می شد فردای اون روز مجددن می آمد و برای شوهرش اقامه دعوا می کرد. به چه دلیل می تمام سختگیریها فقط برای فاطمه بوده. بعد از وفات رسول خدا جابر نزد ابو بکر آمد و گفت پیامبر به من وعده مبلغی از اموال بحرین را داده بود ابوبکر بدون اینکه از او شاهد بخواهد 1500 دینار از بیت المال را به جناب سلطان الواعظین علت اینکه خلیفه از جابر طلب شهود نکرد این بود که جابر از اصحاب نزدیک رسول خدا بود و از رسول خدا شنیده بود که هرکس کس عمدن بر من دروغ ببندد، نشیمنگاهش آتش دوزخ خواهد بود. واضح است که مرد بزرگی چون جابر برای چند دینار مال بی ارزش دنیا خود را گرفتار دوزخ نمی کند. جابر مؤمن تر بود یا علی و فاطمه؟ آیشه میگوید اهدی احدی را راستگوتر از فاطمه ندیدم جز پدرش، این را بدانید که هیچ یک از صحابی را نمی توان با علی و فاطمه و حسنین علیهم السلام مقایسه مقایسی کرد. چون آیه تطهیر در شعن ایشان نازل شده. اگر دروغوی از جابر بعید است به طریق اولا از فاطمه زهره و امام علی ابعد و محال است. ادعای شما درباره آیه تطهیر و خلاف ظاهر آیه و عقیده عموم مفسرین است. چون صدر و زیل آیه درباره زنان پیامبر است، و معنی ندارد که وسط آیه در مورد کسی دیگری باشد اصولا این آیه نمی تواند درباره زنان پیامبر باشد چون زمیر خطابی به کار رفته در آیه زمیر جمع مذکر کم است و نه زمیر جمع معنس کن نه علاوه بر این دلیل وجود روایات بسیار در کتب اهل سنت مبنی بر اینکه این آیه در شعن خمسه طیبه است معید ادعای ماست امام احمد بن حنبل از ام المؤمنین ام سلمه نقل میکند که گفت روزی رسول خدا در منزل من بود فاطمه ظرف ای را برای آن حضرت آورد پیامبر ابای خیبری را زیر پای مبارکش گسترده بود رسول خدا به دخترش فرمود برو و شوهر و پسرهایت را هم بیاور طولی نکشید که علی و حسن این آمدند و مشغول خوردن حریره شدند در آن حال جبرئیل نازل شد و آیه تطهیر را نازل کرد پس از نزول وحی رسول خدا زیادتی عبا را بر سر آنها کشید و دست مبارکش را به سوی آسمان گشود و عرضه داشت بار اینها اهل بیت من هستند هر پلیدی و آلودگی را از ایشان دور گردان و پاک نما پاک کردنی من عرض کردم آیا من هم با شمایم؟ فرمود تو بر خیر هستی پس به دلالت قطعی این آیه پنج تن آل کسا از هر گونه اشتباهی از هستند. باعث تحصف است که خلیفه چون این افرادی را به دروگویی و شهادت زور متهم می کند. من نمی توانم باور کنم که خلیفه عمدن فدک را قصد کرده باشد. حالانکه آنکه تمام بیت المال را در اختیار داشت و نیازی به فدک نبود. بله احتیاجی نداشت اما میخواست دست علی و زهرا از مال دنیا خالی باشد تا هیچ زمینهی برای اقبال مردم به آنان نباشد. ابوبک حق مسلم و قرآنی اهل بیت را هم به همین دلیل از آنها گرفت و به این بهانه که خمس مبلغ زیادی میشود و نمیتوان همه را به زبل قربا اختصاص داد آنها را از حق شرعیشان معنه کرد. آیا شما حق رأی و نظر را برای مجتهد جایز نمیدانید؟ خلیفه ابوبکر و عمر بر اساس چون این کاری انجام دادند و هیچ اشکالی هم ندارد. اجتهاد در مقابل نص عقلا جایز نیست. معنی اجتهاد کوشش به منظور استخراج نظر خداوند متعال با استفاده از منابع دینی است. پس زمانی که بر طبق نس صریح قرآن نظر خداوند متعال به وضوح روشن می شود دیگر جایی برای اجتهاد باقی نمی مارد. هیچ فردی حق ندارد روی حرف خدا حرفی بزند جالب اینجاست که خداوند متعال علی علیه السلام را به عنوان شاهد بر رسالت پیامبر پذیرفته است اما ابوبک ایشان را به عنوان شاهد نمی مزیرت. منظورتان از اینکه خداوند متعال شهادت علی را پذیرفته چیست؟ بر اساس محتوای آیه هفته سوره مبارکه هود، افمن کان علا بینهی من ربهی و تیلوه و شاهد من هو، خداوند علی علیه السلام را شاهد و گواه پیام معرفی فرموده. تا جایی که من به خاطر دارم، مراد از شاهد در این آیه قرآن است، نه علی. مفسرین اهل سنت با استناد به حدود سی حدیث مراد از شاهد را علی ابن عبی طالب می داند. خطیب خارزمی می از ابن عباس پرسیدند مراد از شاهد در این آیه چیست گفت مراد خداوند علی است که برای پیامبر شهادت داد. آیا شهادت چونین کسی را رد کردن و به او توهین کردن موجب رضایت خداوند متعال بوده؟ این دیگر چه اجتهادی است که تا این حد مغایر با اصول اولیه‌ی دین اسلام است چرا باید چنین کسی را مورد آزار قرار دهند تا حدی که در خطبه شخشقیه بفرماید مانند کسی که در چشمش خار و در گلویش استخوانی باشد در برابر ظلم اینان صبر کردم آیا خودتان از رسول خدا نقل نکرده اید که کسی که علی را اذیت کند مرا اذیت کرده است بیایید و آن زمانی را در نظر بیاورید که شهادت علی و دادخواهی فاطمه رد شد و به آن دو فخش و ناسزا دادند. حقوق حضرت فاطمه که پاره تن رسول خدا بود، علنا و آشکارات در روز روشن به یغما رفت و زیر بنای ظلم و ستم به آل پیامبر استوار شد. وجدانتان چه میگوید؟ البته حضرت بیبی بی در اوایل خشمگید شد. اما بعدن بین ایشان و خلیفه اصلاح شد و با توجه به اینکه متوجه حقانیت اعمال خلیفه شد در نهایت امر از خلیفه راضی شد چنین نیست که میگویید بخاری و مسلم نقل میکنند فاطمه در حال خشم و ابو ابوبکر را ترک کرد و از او خشمناک ماند و حرفی با او نزد تا وفاتش سپس علی بر بدن این نماز خواند و او را شبان دفن کرد و ابوبکر را برای مراسم دفن و کفن و نماز دعوت نکرد. همچنین نقل شده فاطمه در بستر بیماری به ابوبکر و عمر فرمود خدا و ملائکه را شاهد میگیرم که شما دو نفر مرا به خشم آوردید و رضایت مرا فراهم نکردید. اگر پیامبر را ملاقات کنم به او از شما شکایت خواهم کرد. این احادیث را در کنار حدیث فاطمه پاره تن من و میوه دل من و نور چشم من است، او روح بین دو پهلوی من است، هر که فاطمه را بیازارد مرا آزرده و هر که مرا آزار دهد خدا را اذیت کرده و هر کس فاطمه را به خشم آورد مرا خشمگین کرده قرار دهید و نتیجه گیری کنید. در عجبم که شما علما چگونه این احادیث را در کنار هم جمع می کنید و به نتیجه قهریان توجه نمی کنید. این اخبار صحیح است ولی در خصوص علی است که چون قصد ازدواج با دختر ابو را داشت رسول خدا بر او قذب کرد و فرمود هر که فاطمه را آزار دهد مرا آزار داده ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم زیبا نیست که انسان هر حرفی را از هر کسی بپذیرد مگر اینکه در مورد سوابق آن تحقیق و بررسی کند این اتهامات به کسی که آیه تطهیر در شعن اوست و آیه مباهله در مده اوست و در مدینه اله نمی چسبد. کسی که تاریخ زندگی امیرالمومنین را بداند و اهل اندیشه باشد می تواند بفهمد که این احادیث تماما ساختگی و از جعلیات بنی امیه است اخباری که در نکوهش آزار دهندگان فاطمه است منحصر به این خبر نیست از رسول خدا نقل شده مغزوب فاطمه مغزوب بن است و مغزوب من مغزوب پروردگار متعال است وای در آن کس که بر اطرت و شیعیان آنان ظلم کند اگر این حدیث را در کنار حدیثی که قبلا عرض کردم مبنی بر اینکه ابوبکر و عمر مغزوب فاطمه شدند بگذارید، نتیجه می شود که ابو بکر و عمر مغضوب پروردگار بودند و باز مجددا این نتیجه را در کنار آیه شریفه اهدن نسراط المستقیم سرات الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم در نظر بگیرید خواهید یافت که سرات مستقیم غیر سرات مغضوبین است و سرات مستقیم غیر از سرات ابوبکر عمر است چرا که این دو جزء مقذوبین بودند حضرت فاطمه بر ابوبکر و عمر غضب کرد ولی این خشم سریعا فروکش کرد حضرت فاطمه نیز پس از فروکش کردن احساسات از ابوبکر راضی شد زیرا سکوت نشانه رضایت است نشانه دیگر آنکه علی در دوره خلافت خود فدک را ضبط نکرد اولا اینکه فرمودید منشه خشم حضرت صدیقه تاهره احساسات و هوا و هوس بوده کاملا مردود است. چون هیچگاه یک مؤمن کامل به این نوع از خشم دشار نمی شود تا چه رسد به پاره تن رسول خدا و کسی که قلب و جباره او تا استخوان بالای شانه او مملو بز ایمان بوده. اگر حکم ابوبکر حکم خدا بوده، ایمان فاطمه این اجازه را به او نمی دهد که کوچکترین اعتراضی را به حکم خدا داشته باشد، تا چه رسد به اینکه عملا با حاکم شهر دردی افتد؟ سانیان، اخبار قطعی نشان می دهد که آن حضرت تا دم مرگ از آن دو نفر ناراحت بود و سکوت ایشان علامت رضایت نبوده، چه بسا قدرت ظالم، موجب به سکوت مظلوم می شود و اما علت عدم تصرف فدک توسط امیر در دوره خلافت نداشتن آزادی عمل بوده نه رضایتیشان از دست فدک به چه دلیل می گوید علی کرم الله و در عمل آزاد نبوده آن حضرت در دوره خلافت خود می خواست منبر رسول خدا را به جای اول آن برگرداند که با مخالفت مردم روبرو شد او مردم را از برگزاری نماز جماعت تراویه من کرد اما مردم صدا را بلند کرده. ف... کرد. ما مردم صدا را بلند کرده و فریاد میزدند علی می زدند. علیمی خواهد بر خلاف سنت عمر رفتار کند. نماز تراویه از جمله عدهایی بود که خلیفه عمر اختراع کرد و مردم نیز از آن استقبال کردند. دقیقاً به همین علت گرفتن فدک نیز برای امیر مؤمنان مقدور نبود پس سکوت ایشان از ناچاری است نزد رضایت اما اینکه گفتید حضرت زهرا در اواخر عمر از ابو و عمر راضی شد هم برخلاف احادیث قطعی خودتان است ابن قتیبه و ابن ابی الهدید نقل کنند. عمر به ابوبکر گفت بیا نزد فاطمه برویم چون که ما او را خشمگین کردیم با هم به در خانه وحی رفتند اما حضرت فاطمه اجازه ورود به آنها نداد آنها علی را واسطه قرار دادند حضرت بیبی بی در جواب علیش سکوت اختیار کرد پس امیرالمومنین خود اجازه ورود دادند آن دو نفر وارد شده و سلام کردند اما جناب صدیقه کبری جواب آنها را نداده و رو به دیوار کرد ابوبکر گفت ای حبیبه رسول خدا من قدر و شرف تو را از همه بهتر می دانم و اگر تو را از حق ارث منع کردم فقط به علت این بود که خودم از پیامبر شنیدم ما جماعت پیامبران از خود ارث باقی نمیگذاریم حضرت فاطمه رو به امیر مومنان کرده و فرمود من حدیثی را از پدرم به یاد شما میآورم شما را به خدا آیا از آن حضرت نشنیدید که رضای فاطمه رضای من است پس هر کس او را دوست بدارد مرا دوست داشته و هر کس او را راضی کند مرا راضی کرده و هر کس فاطمه را به خشم آورد مرا به خشم آورده ابوبکر و عمر گفتند بله این کلمات را خودمان از پیامبر شنیدیم سپس فرمود خدا و ملایکه را شاهد میگیرم که شما دو نفر رضایت مرا فراهم نکردید و مرا به خشم آوردید اگر پیامبر را ملاقات کنم از شما شکایت می کنم. از سخنان بیبی بی گریان شد و گفت به خدا پناه می از آزار پیامبر خدا. سپس فاطمه باناله فرمود سوگند به پروردگار که در هر نمازی بر تون نفرین می کنم. با چشمان گریان بیرون رفت. مردم اطراف وی را گرفتند و به او دلداری می گفت وای بر شما، رهایم کنید هیچ احتیاجی به بیعت شما ندارم به خدا قسم میل ندارم بیعت من برگردن شما باشد بعد از آنچه از فاطمه دیدم و شنیدم و اما دلیل دیگر بر اینکه حضرت زهرا هیچگاه از آن دو نفر راضی نشد متن وصیتنامه ایشان است که در آن قید شده که هرگز احدی از این مردمی که به من ظلم کردند و حق مرا گرفتند بر جنازه من حاضر نشوند چون آنها دشمن من و دشمن رسول خدا هستند و هرگز هیچ یک از این جماعت بر من نماز نخوانند. پس علی جان خودت مرا شبانه دفن کن. آیا سزاوار است در حق پیامبری که برای سعادت دیوی پا رنج بسیار کشید و در هنگام رهلتش تنها یک دختر از خود به یادگار گذارد، چند روز بعد از وفاتش، حق مسلم و قطعی این دختر را بگیرند و به قدری او را اذیت کنند که در جوانی پیوسته از خدا مرگ طلب کند و بگوید آنقدر مصیبت بر من ریخته است که اگر این مسایب بر روزها ریخته میشد شب تار می گردید و عاقبت هم وصیت کند مرا شبانه دفن کنید و احدی از اعراب را برای تشیع و نماز به من خبر نکنیم با این بیانات جناب واعز حالتی پر از حزن و اندوه بر مجلس حاکم شد جناب حافظ اشک میریفت و استغفار میکرد و از آن شب به بعد دیگر به میدان مناظره نیامد سه ساعت بعد از نیمه شب و نزدیک از آن صبح مجلس خدمت